در سال 2001، محققان بریتانیایی مطالعه خود را روی 248 نفر آغاز کردند تا بتوانند عادات بهتری را طی دوره دو هفته ای بسازند. سجاهای آزمایش به سه گروه تقسیم شدند. اولین گروه گروه کنترل بودند. صرفاً از آنها خواسته شد بازی ورزش کردنشان را رهگیری کنند. دومین گروه گروه انگیزه بودند. از آنها خواسته شد نه فقط میزان ورزش خود را رهگیری کنند بلکه مطالبی را درباره اواید ورزش مطالعه کنند همچنین محققان به این گروه توضیح دادند که ورزش چه نقشی در کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی و بهبود سلامتی قلب دارد در نهایت گروه سومی هم وجود داشت. این سوژه ها همان توصیه‌های گروه دوم را دریافت می‌کردند که باعث می‌شد میزان انگیزه آنها نیز به همان مقدار باشد اما علاوه بر این از آنها خواسته شد برنامه ای را برای زمان و محل ورزش خود طی هفته آتی تنظیم کنند از هر عضو گروه سوم خواسته شد این جمله را تکمیل کنند طی هفته بعد حداقل 20 دقیقه ورزش سنگین را در روز ساعته و در مکان انجام خواهم داد در گروه‌های اول و دوم 35 الی هشت درصد از افراد حداقل یک بار در هفته ورزش می‌کردند جالب اینجاست که توصیه‌های انگیزشی به گروه دوم انگار تأثیر خاصی روی رفتارشان نداشت اما 91 درصد از گروه سوم حداقل یک بار در هفته ورزش می‌کردند بیش از دو برابر بیشتر از نرخ معمول جمله که آنها پر کردند همان چیزی بود که محققان تحت عنوان قصد اجرا یاد می کنند. یعنی برنامه پیشاپیشی که زمان و مکان اقدام را تعیین می کند به ترتیب قصد شما برای اجرای یک عادت به خصوص تعیین می شود. سر نخهایی که موجب تحریک یک عادت می شوند به شکلهای متنوعی ظاهر می شوند. احساس اینکه گوشی داخل جیبتان می لرزد. آن تکه شکلات هایی که داخل کلوچه وجود دارند. صدایی که آژیر آمبولانس دارد. اما دو مورد از رایج ترین سر نخها زمان و موقعیت مکانی هستند. مقاصد اجرایی هر دوی این سر نخها را تقویت می کنند. به بیان گسترده، قالب ایجاد یک قصد اجرا این است وقتی موقعیت ایکس پیش آمد واکنش وای را اجرا خواهم کرد صدها مطالعه نشان دادند که مقاصد اجرایی برای پایبندی به اهداف مفیدند چه هدفتان برآورده سازی هدف در یک زمان دقیق باشد و چه بخواهید واکسن آنفولانزا یا وقت ملاقات کلونوسکوپی را به موقع انجام دهید آنها احتمال اینکه افراد به عادتهایی نظیر دوچرخ سواری، مطالعه، خواب زودهنگام و توقف استعمال دوخانیات پایبند بمانند را افزایش می دهند. همچنین محققان دریافتند که اگر از افراد خواسته شود با پاسخ به پرسش هایی که در ادامه مطرح می کنیم، مقاصد اجراییشان را طرریزی کنند احتمال مشارکتشان در انتخابات افزایش می کدام مسیر را برای رفتن به صندوقهای اخذ رأی طی می‌کنید؟ چه زمانی می‌خواهید برای رأی دادن بروید؟ کدام اتوبوس را برای رفتن به آنجا سوار می‌شوید؟ سایر های دولتی موفق نیز شهروندان را برانگیختند تا های شفافی برای ارسال به موقع اظهارنامه‌های مالیاتی داشته باشند یا دستورالعمل‌هایی را درباره زمان و مکان پرداخت برگ جریمه‌های قدیمی فراهم کردند لب به مطلب مشخص است افرادی که برنامه ویژه‌ای را برای زمان و مکان اجرای یک عادت جدید دارند احتمالاً بیش از سایرین آن را پیگیری خواهند کرد افراد زیادی هستند که سعی می کنند عادتهایشان را بدون بررسی این جزئیات تغییر دهند به خودمان می گویین می سالمتر غذا بخورم یا میخواهم بیشتر بنویسم اما هیچگاه درباره زمان و مکان اجرای این رخدادها صحبت نمی کنیم. آن را به دست شانس می سپاریم و امیدواریم که صرفا اجرای آن را به خاطر بیاوریم یا در زمان صحیح انگیزه لازم را داشته باشیم. یک قصد اجرایی ایده های مبهمی همچون دوست دارم بیشتر ورزش کنم یا دوست دارم بهرهوری بیشتری داشته باشم یا باید رای بدهم را، کنار میزند و آنها را به یک برنامه عملیاتی محکمتر تبدیل می کند. اکثر افراد فکر می کنند انگیزه لازم را ندارند در حالی که در واقع فقدان شفافیت وجود دارد. همیشه زمان و مکان اقدام مشخص نیست. برخی افراد کل زندگیشان را منتظر زمان صحیح و حضور در مکان درست میمانند تا ارتقا پیدا کنند. وقتی یک قصد اجرا تعیین شد، دیگر لزومی ندارد منتظر حال و خودتان بمانید؟ آیا امروز یک فصل بنویسم یا نه؟ آیا امروز صبح مدیتشن کنم یا موقع نهار؟ وقتی زمان اقدام فرارسید، دیگر نیازی به تصمیم گیری نیست، صرفاً برنامه از پیش تعیین شده خودتان را پی بگیرید. راه ساده برای اعمال این استراتژی روی عادتهای پر کردن جاهای خالی این جمله است. من رفتار جای خالی را در زمان جای خالی و در موقعیت مکانی جای خالی انجام خواهم داد. مدیتیشن من مدیتیشن را به مدت یک دقیقه در ساعت هفت صبح و در آشپسخانه انجام خواهم داد. مطالعه من زبان اسپانیایی را به مدت 20 دقیقه در ساعت شش بعد از و در اتاق خوابم مطالعه خواهم کرد. ورزش: من ورزش را به مدت یک ساعت در ساعت 5 بعد از ظهر و در باشگاه محعلم انجام خواهم داد. ازدواج ساعت 8 صبح برای همسرم در آشپزخانه، چای درست خواهم کرد. اگر مطمئن نیستید که باید چه زمانی عادت خود را شروع کنید، اولین روز هفته، ماه یا سال را انتخاب کنید. افراد در این ایام تمایل بیشتری برای اقدام دارند، زیرا در آن اوقات امیدشان بالاتر است. اگر امید داشته باشیم، دلیلی برای اقدام پیدا می کنیم. یک شروع تازه نقش انگیزشی دارد. فواید دیگری برای مقاصد اجرایی وجود دارد. تعیین دقیق چیزهایی که می و نحوه دسترسی به آنها به شما کمک می کند به مسائلی که پیشرفت را به حاشیه میرانند توجهتان را منحرف می کنند و شما را از مسیر بیرون میکشند نه بگویید. به درخواستای کوچک آری می گوییم زیرا از خواسته های من خیلی دقیق باخبر نیستیم و نمیدانیم باید به جای آنها، دنبال چه چیزی برویم؟ وقتی رویاهایتان مبهمند، به راحتی میتوان انتظارات کوچک را توجیح کرد و هیچگاه سراغ روی کردهای ویژه لازم برای موفقیت نرفت. به عادتهایتان زمان و فضا بدهید تا در دنیای شما زندگی کنند. هدف این است که با تکرارهای کافی بحث زمان و موقعیت مکانی، کاملا برایتان جا بیفتد به گونه ای که بتوانید کار درست را در زمان درست انجام دهید حتی اگر نتوانید دلیلش را توضیح دهید همانطور که جیسون زوییگ نویسنده میگوید طبیعتا قرار نیست هیچگاه بدون فکر و ناخوشاگاه سراغ ورزش کردن بروید اما همچون سگی که با صدای زنگ بزاغ از دهانش جاری می شود، شاید شما هم اگر به ساعت معمول ورزشتان نزدیک شوید، بدنتان به خارش بیفتد. راه زیادی هست که می توانید از مقاصد اجرایی در زندگی و محیط کارتان بهره ببرید. رویکرد محبوب من همانیست که از بی جی فاگ در دانشگاه استنفورد شنیدم و نوعی استراتژیست که آن را زنجیر سازی عادتها می نامم. زنجیر سازی ها، یک برنامه ساده برای نوسازی سازی آدت هایتن. فیلسوف فرانسوی دنیس دیدروت تقریبا همه طول حیات خود را در فقر زندگی کرد، اما همه چیز در یکی از روزهای سال 1765 عوض شد. دختر دیدروت در شرف ازدواج بود و او نمی مخارج ازدواج را بپردازد. الو اینکه ثروتی که نداشت اما دیدروت را به خاطر مسئولیتش در بنیانگذاری و نگارش اینسایکلوپیدی می شناختند که یکی از جامعه ترین دایرت های آن زمان بود. وقتی کاترین کبیر شهبانوی روسیه از مشکلات مالی دیدروت با خبر شد قلبش به سوی او پر او یک دوستدار کتاب بود و عمیقاً از دایرت لذت می‌برد. او پیشنهاد داد که کتابخانه شخصی دیده روت را به قیمت هزار پوند خریداری کند، بیش از 150 هزار یورو به قیمت امروز، ناگهان دیدروت پول کافی را در حسابش داشت. با این ثروت جدیدش نه فقط می توانست هزینه عروسی را بپردازد بلکه توانست یک جامعه بلند قرمز را برای خودش خریداری کند. جامعه بلند دیدروت خیلی زیبا بود در واقع آنقدر زیبا که وقتی در کنار اساسیه کنونیش قرار می گرفت تفاوت چشمگیری را نشان میداد او نوشت که دیگر هماهنگی یک نواختی و زیبایی میان جامعه باشکوه و سایر اسباب و وجود نداشت دیده خیلی زود حس کرد که باید مایی املکش را به روز کند او قالی خود را با یک قالی دمشقی، جایگزین کرد. خانه خود را با مجسمه‌های گران قیمت تزیین کرد. یک آینه خرید تا آن را بالای تاخچه قرار دهد و میز بهتری در آشپزخانه گذاشت. صندلی حسیری و قدیمی خود را دور انداخت و به جایش یک صندلی چرمی خرید. همانند قطعات دومینو که روی هم می‌افتند، خریدها متعاقباً از راه میرسیدند، رفتار دیده روت خیلی هم خاص و غیر رایج نیست. در واقع گرایش به خریدهایی که پشت سر هم می آیند را به این نام میشناسند. اثر دیده روت. اثر دیده روت می گوید کسب یک اساسیه جدید غالبا نوعی مصرفگرایی ایجاد می کند که منجر به خریدهای بیشتر می شود. می توانید این الگو را همه جا ببینید. یک لباس میخرید و مجبور میشوید کفش و گوشواره جدیدی بخرید که به آن بیاید. یک مبل می خرید و ناگهان فکر تعویز و نوسازی طرح کل اتاق نشیمن به سرتان می زند. یک اسباب بازی برای بچه خود می خرید و به زودی کل قطعات یدکی و فرعی مرتبط با آن را خریداری می کنید. این یک سلسله اقدام به خرید است. بسیاری از رفتارهای انسانی همین چرخه را پی میگیرند. غالباً آنچه در ادامه انجام می دهید را با توجه به آنچه همکنون به پایان رسنده اییدد برمیگزینید. پس از رفتن به دستشویی شستن و خشک کردن دست را داریم که همین موضوع یادتان می اندازد باید حوله های کثیف را داخل ماشین لباسشویی بیاندازید. بنابراین باید شوینده را به فهرست خریدتان اضافه کنید و آخر. هیچ اتفاقی به صورت جداگانه و منفرد رخ نمی دهد. هر عمل همچون است که رفتار بعدی را تحریک می کند. چرا این امر اهمیت دارد؟ وقتی صحبت از ساختن عادتهای جدید می شود، می توانید ارتباط میان رفتارها را به نفع خودتان به کار بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد یک عادت جدید شناسایی عادت های است که همکنون هر روز انجام می دهید و در ادامه باید رفتار جدید خود را میان آنها جا دهید. به این رویکرد کرد زنجیر سازی عادت ها سازی عادت یک فرم خاص از قصد اجراست. به جای اینکه عادت جدید خود را به یک زمان و مکان خاص معطوف کنید، آن را با یک عادت کنونی جفت میکنید این روش که توسط بی جی فاگ و در قالب بخشی از برنامه عادت‌های کوچک ایجاد شد می تواند به منظور طراحی یک سرنخ مشهود برای هر عادت استفاده شود فرمول زنجیر سازی عادت چنین است پس از عادت فعلی آن عادت جدید را انجام خواهم داد به عنوان مثال مدیتیشن، پس از اینکه هر روز صبح فنجان قهوه خودم را ریختم به مدت یک دقیقه مدیتیشن می کنم. ورزش پس از اینکه کفش های کارم را درآوردم بلافاصله لباسهای ورزشم را می پوشم. قدردانی، پس از اینکه سر میز شام نشستم جمله ای میگویم که قدردانیم را نسبت به اتفاقات امروز نشان دهم. ازدواج. پس از اینکه شب به رخت خواب رفتم همسرم را میبوسم، ایمنی پس از اینکه کفش های دویدنم را پوشیدم به یک دوست یا عضو خانواده می میزنم که فلان جا می دوم و فلان قدر طول خواهد کشید. کلید کار اینجاست که رفتار مطلوبتان را با کاری که همکنون هر روز انجام میدهید، گره بزنید. وقتی در این ساختار اساسی مهارت پیدا کردید، می توانید با زنجیر کردن متوالی عادت های کوچک، زنجیرهای بزرگتری را بسازید. این کار به شما اجازه می دهد از نیروی طبیعی حاصل از یک رفتار بهره بگیرید و سراغ رفتار بعدی بروید. یک نسخه مثبت از اثر دیدروت. زنجیره عادت های روتین و صبحگاهی شما می تواند باشد. یک پس از اینکه فنجان قهوه ی را ریختم، به مدت 6 ثانیه مدیتیشن می کنم. دو، پس از اینکه شست ثانیه مدیتیشن کردم، فهرست کارهای روزانهام را می نویسم. سه، پس از اینکه فهرست کارهای روزانهام را نوشتم، بلافاصله اولین وظیفهام را شروع می کنم. یا می توانید این زنجیره عادت را برای گروه در نظر بگیرید. یک، پس از خوردن شام، پشخابم را مستقیما داخل ماشین ظرفشوی می گذارم. دو، پس از جمع جور کردن ظرفهایم بلافاصله روی اوپن را تمیز می کنم. سه، پس از اینکه اوپن را تمیز کردم، فنجانم را برای قهوه فرد و صبح سر جای همیشگیش می گذارم. سازی عادت باعث می شود که با جای دادن یک رفتار جدید در میان رفتارهای قدیمی، احتمال پایبندی به آن را افزایش دهید این پروسه میتواند تکرار شود تا های پرشماری از عادت ها شکل بگیرد که هر کدام از آنها همچون سرنخی برای عادت بعدی عمل میکند همچنین میتوانید رفتارهای جدید را میان روتین های کنونی خود قرار دهید به عنوان مثال احتمالا همین الان هم روتین خاصی را برای صبح ها داشته باشید که این چنین باشد بیدار شدن، درست کردن رختخواب، دوش گرفتن. فرض کنید میخواهید عادت کنید شبها مطالعه بیشتری داشته باشید. می توانید زنجیره عادت خود را گسترش دهید و این مورد را آزمایش کنید. بیدار شدن، درست کردن رختخواب، گذاشتن یک کتاب روی بالش دوش گرفتن. همکنون وقتی هر شب به رختخوابتان می‌روید یک کتاب آنجا منتظر است تا آن را بخوانید در مجموع زنجیر سازی عادت به شما اجازه می‌دهد یک مجموعه قانون ساده را بسازید و از آن برای هدایت رفتار آینده خود بهره بگیرید مثل این می‌ماند که همواره یک برنامه عملیاتی را برای اقدامات بعدی خود داشته باشید وقتی که با این روی کرد خوب گرفتید می توانید زنجیره عادت عمومی را توسعه دهید که در موقعیت های مناسب راهنمای شما باشد. ورزش وقتی به پلکان رسیدم به جای اینکه از آسانسور استفاده کنم از پله ها بالا میروم. مهارت های اجتماعی وقتی وارد مهمانی شدم خودم را به افراد ناشناس معرفی می کنم. امور مالی وقتی می خواهم چیزی را به قیمت بالای 100 دلار بخرم 24 ساعت پیش از خرید صبر کنم. خوراک سالم وقتی برای خودم یک وعده غذا کشم، همیشه ابتدا سبزیجات را داخل بشقابم میگذارم. مینیمالیسم یا سادگرایی وقتی یک آیتم جدید خریدم یکی از چیزهای قدیمی را کنار میگذارم. یکی داخل یکی بیرون روحیه وقتی تلفن زنگ خورد یک نفس عمیق میکشم و پیش از جواب دادن به آن لبخند میزنم فراموشکاری موقع ترک یک مکان عمومی میز و صندلی را چک میکنم تا احیانا چیزی را جا نگذاشته باشم مهم نیست که چطور از این استراتژی بهره میگیرید چون راز ایجاد یک زنجیره موفق از عادتها، انتخاب سرنخ صحیح برای شروع اقدامات است. برخلاف قصد اجرا که به صورت ویژه به زمان و موقعیت مکانی یک رفتار معلوم اشاره می کند، سازی عادت به صورت زمنی زمان و موقعیت مکانی را در دل خودش دارد. زمان و مکانی که برای گنجاندن یک عادت در روتین روزانه خود انتخاب می کنید می تواند یک تفاوت بزرگ ایجاد کند. اگر در تلاش هستید، مدیتیشن را به روتین صبحگاهی خود بیافزایید، اما صبح شلوغی دارید و بچه هایتان مدام داخل اتاق این طرف و آن طرف می بنابراین احتمالا مکان و زمان نادرستی را انتخاب کرده اید. زمانی که احتمال بیشتری برای موفقیت دارید را در نظر بگیرید وقتی که احتمالاً به کار دیگری مشغول هستید را به اجرای یک عادت جدید اختصاص ندهید سرنخ‌های شما نیز احتمالاً در بازه زمانی یکسانی نسبت به عادات مطلوبتان رخ می‌دهند اگر دوست دارید فلان عادت را هر روز انجام دهید اما آن را بعد از عادتی قرار میدهید که فقط دوشنبه ها رخ میدهد زمان خوبی را انتخاب نکرده اید یک راه برای یافتن محرک صحیح زنجیره عادات این است که فهرستی از عادت های کنونی خود را گردآوری کنید می توانید از کارت امتیازی عاداتتان در فصل پیش به عنوان نقطه شروع خود بهره بگیرید در اقدامی جایگزین می توانید فهرستی با دو ستون بسازید. در ستون اول، عاداتی که هر روز بدون نقص انجام میدهید را بنویسید. به عنوان مثال، خارج شدن از رخت خواب، دوش گرفتن، مسواک زدن، لباس پوشیدن، دم کردن یک فنجان قهوه، خوردن صبحانه، بردن بچه ها به مدرسه، شروع روز کاری، خوردن ناهار، پایان روز کاری، درووردن لباس های کار، نشستن سر میز شام، خاموش کردن چراغها، رفتن به رخت خواب. فهرست شما می تواند بسیار طولانی تر باشد، اما منظورم را متوجه شدید. در ستون دوم، تمامی اتفاقاتی که بدون تردید و قصور در یک روز برایتان اتفاق می را بنویسید. به عنوان مثال طلوع خورشید دریافت یک پیام متنی ترانه‌ای که تا آخر روز به انگوش گوش می‌دهید غروب خورشید با بهره از این دو فهرست می توانید به دنبال بهترین مکان بگردید تا عادت جدیدتان را وارد سبک زندگی خودتان کنید در صورتی سازی عادت شما به بهترین نحو جواب خواهد داد که سرنخ شما بسیار ویژه و بلافاصله قابل اجرا باشد. بسیاری از افراد سرنخهایی را انتخاب می کنند که بسیار مپهمند. خودم این اشتباه را انجام دادم. وقتی می خواستم عادت درازنشست را آغاز کنم چون این ای برای آن در نظر گرفتم. وقتی ساعت نهار فرارسید درازنشست را انجام می دهم. در نگاه اول این تصمیم منطقی به نظر می رسد اما خیلی زود متوجه شدم که محرک این زنجیره چندان شفاف نیست. آیا درازنشست را قبل از خوردن نهار انجام می دهم؟ پس از خوردن نهار انجامش می دهم؟ کجا درازنشست را انجام می دهم؟ پس از اینکه چند روز با عدم هماهنگی سپری شد زنجیره ی عادتم را به این شکل تغییر دادم. وقتی لپتاپم را برای صرف نهار بستم کنار میز کارم ده تا دراز نشست می روم دیگر ابهام از بین رفته بود عادتهایی نظیر بیشتر بخوان یا بهتر بخور دلایل ارزشمندی هستند اما این احتاف دستورالعمل لازم درباره نحوه و زمان اقدام را فراهم نمی کنند صریح و شفاف باشید پس از اینکه در را بستم پس از اینکه مسواک زدم پس از اینکه پشت میز نشستم این دقت اهمیت دارد هر قدر عادت جدید خود را با دقت بیشتری به یک سرنخ به خصوص پیوند بزنید احتمال اینکه در زمان موعود آن را به خاطر بیاورید و به آن مقید بمانید بیشتر می شود. اولین قانون تغییر رفتار این است که آن را شفاف و آشکار کنید استراتیجی همچون مقاصد اجرایی و زنجیره‌سازی سازی عادت در میان عملی‌ترین ترین روی های قرار دارند که سرنخ‌های بدیهی را برای عادتها ایجاد می کنند و یک برنامه شفاف را برای زمان و مکان اقدامتان طرح میریزند. خلاصه فصل اولین قانون تغییر رفتار این است. آن را شفاف و آشکار کنید دو مورد از رایجترین سرنخ‌ها زمان و موقعیت مکانی هستند ایجاد قصد اجرا یک استراتژیست که میتوانید از آن برای تخصیص یک زمان و موقعیت مکانی ویژه به عادت جدیدتان بهره بگیرید فرمول قصد اجرا این چنین است من رفتار جای خالی را در زمان جای خالی و در موقعیت مکانی جای خالی انجام خواهم داد. زنجیرسازی عادت یک استراتژیست که می توانید از آن برای جفت کردن یک عادت جدید با یکی از عادتهای کنونیتان استفاده کنید. فرمول زنجیرسازی عادت چنین است، پس از عادت فعلی، آن عادت جدید را انجام شش برای انگیزه اعتبار بیش از حدی قائل شدهاند. غالباً محیط اهمیت بیشتری دارند. آنه سورن دایک یکی از پزشکان مراقبت‌های اولیه در بیمارستان عمومی ماساچوست در بستن یک ایده عجیب داشت. او معتقد بود که می‌تواند های خوراک هزاران پرسنل و بازدید کننده بیمارستان را بدون اینکه خودشان کوچکترین اراده یا ای برای تغییر آن داشته باشند، عوض کند. در واقع، اصلاً قصد نداشت در این باره با آنها صحبت کند. سورن دایک و همکارانش یک مطالعه 6 ماهه را طراحی کردند تا معماری انتخاب در کافتریای بیمارستان را تغییر دهند. آنها کارشان را با تغییر چیدمان نوشیدنی ها آغاز کردند. در ابتدا های کنار صندوق کافتریا فقط با نوشابه پر شده بودند. محققان آب را هم به عنوان یک گزینه دیگر به این یخچالها اضافه کردند. همچنین آنها سبدهای حاوی آب مدنی را کنار میزهای غذای داخل اتاق قرار دادند. نوشابه کماکان در یخچالهای اولیه قرار داشت. اما آب نیز همکنون در تمام ایستگاه های ارائه نوشیدنی لحاظ شده بود. تیه سماه آتی، میزان فروش نوشابه در بیمارستان به میزان یازده ممیز چهار دهم درصد کاهش یافت. در این میان فروش آب مدنی به میزان بیست و پنج ممیز هشت دهم درصد زیاد شد. آنها تدابیر مشابهی را برای غذاهای کافتریا انجام دادند و نتایج مشابهی گرفتند. به هیچ کس حتی یک بار نگفته بودند که باید فلان غذا را بخورد. افراد معمولا محصولات را نه به خاطر ماهیت بلکه به خاطر مکان حضورشان انتخاب می کنند. اگر وارد آشپزخانه شوم و یک بشخاب کلوچه را ببینم که روی اوپن است، نصفشان را برمیدارم و شروع به خوردن می کنم، حتی اگر از قبل، به خوردن کلوچه فکر نکرده و لزومن هم احساس گرسنگی نداشته باشم. اگر میز مشترک اداره همواره با دونات و نان شیرینی پر شده باشد، خیلی سخت بتوان در برابرشان مقاومت کرد و هر از چند گاهی یک عدد برداشته می شود. تان بسته به اتاقی که در آن حضور دارید و سر نخهایی که پیش رویتان قرار دارند، عوض می شوند. محیط همچون یک دست نامرئی است که رفتار انسانی را شکل می‌دهد. صرف نظر از شخصیتهای منحصر به فردمان، رفتارهای معینی هستند که تحت شرایط محیطی خاص دائما از ما سر می‌زنند. در کلیسا، افراد معمولاً با زمزمه حرف می‌زنند. در یک خیابان تاریک، افراد معمولاً با احتیاط، و حواس جمع رفتار میکنند در این راستا شایع ترین فرم تغییر جنبه درونی ندارد بلکه از بیرون رخ میدهد ما بر اساس دنیای پیرامونمان عوض میشویم. هر عادت به چهار چهارچوب وابسته است در سال 1936 کورت لوین روانشناس یک معادله ساده نوشت که به نظریه قدرتمند تبدیل شد. رفتار تابعی از شخص و محیط اطرافش است. یعنی بی مساویه با f پرانتز باز پی ویرگول ای پرانتز بسته. بی ابتدای واجه بیهیویر به معنی رفتار پی ابتدای واجه پرسون به معنی شخص و ای ابتدای واجه environment به معنای محیط است. خیلی طول نکشید که معادله لوین در محیط کسب و کار نیز، آزمایش شد. در سال 1952، هافکینز استرن اقتصاددان پدیدهای را شرح داد که خودش آن را القای تحریک به خرید می‌نامد. براساس بر اساس آن، خریدار، وقتی محصول را برای اولین بار می‌بیند، نیاز به آن را در ذهنش تصور می کند و بدین وسیله به خرید آن تحریک می شود. به عبارت دیگر، مشتریان گاهی خریدها را نه به خاطر برآورد سازی خاسته هایشان، بلکه به خاطر نحوه ارائه آن محصول انجام می دهند. مثلا، آیتم هایی که در معرض دید و هم ارتفاع با چشم قرار دارند بیش از موارد روی زمین خریداری می شوند. به همین دلیل اسامی برند های گران قیمت را در موقعیت های کاملاً سهل الوصول قفصه های فروشگاه ها مشاهده می کنید. زیرا آنها سود بیشتری را برای فروشگاه دارند در حالی که آلترناتیو های معمولا در نقاطی گذاشته میشوند که خیلی در معرض دید نیستند همین قضیه درباره انتهای راهرو رو هم صدق میکند انتهای راهروها همچون دستگاه پولساز برای خردفروش ها عمل میکنند زیرا موقعیت هایی هستند که کاملا به چشم میآیند و در اصطلاح پاخورشان زیاد است مثلا چهل و پنج درصد از فروش کوکاکولا به صورت ویژه از قفسه های واقع در انتهای راه رو می آید. هر قدر یک محصول یا خدمت بیشتر در دید باشد، احتمال اینکه آن را امتحان کنید بیشتر می شود. افراد لایت می نوشند زیرا در همه بارها قرار دارد و به استارباکس می روند، چون هر گوشه خیابان شعبه دارد. دوست داریم، فکر کنیم امور تحت کنترل خودمان است. اگر آب را به جای نوشابه انتخاب کردیم، حتما به این خاطر است که دلمان آب میخواست، اما در حقیقت بسیاری از اقدامات روزمره ما خواست و اراده خودمان، بلکه با توجه به مشهودترین گزینه موجود، صورت میگیرند هر موجود زنده روشهای خودش را برای حس و درک دنیا دارد عقابها دید راه دور بسیار خوبی دارند مارها می با زبان بسیار حساس خود هوا را بچشند و بو را استشمام کنند کوسه ها می توانند مقادیر اندک الکتریسیته و لرزش در آب که از سوی ماهی های مجاورشان ایجاد می شود را ردیابی کنند. حتی باکتری هم گیرنده شیمیایی دارد یعنی سلول های حسکر ریزی که به آنها اجازه ردیابی مواد سمی محیط را میدهد. در انسان ها درک با استفاده از سیستم حسی عصبی انجام میگیرد، ما دنیا را از طریق بینایی شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی درک میکنیم. اما راه های دیگری را هم برای حس کردن محرکها داریم. برخی خداگاهند اما امدتن ناخداگاه محسوب میشوند. مثلا میتوانید زمانی که دما به خاطر وقوع یک طوفان افت کرد یا زمانی که درد معدهتان افزایش یافت یا زمانی که تعادل به خاطر راه رفتن روی یک زمین سنگلاهی برهم هم خورد را حس کنید. دریافت کننده های بدن شما گستره وسیعی از محرک های درونی نظیر میزان نمک موجود در خون خودتان یا نیاز به نوشیدنی هنگام تشنگی را حس می کنند. اما قدرتمندترین قابلیت حسی همه انسان ها قدرت بینایی است. بدن انسان حدود یازده میلیون دریافت کننده حسی دارد که تقریبا ده میلیون از آنها به بینایی اختصاص دارند. برخی از متخصصان براورد می کنند که نیمی از منابع مغز برای دیدن استفاده می شود. با توجه به اینکه بیش از سایر حواس به بینایی متکی هستیم جای تعجب ندارد که سر نخهای بسری بزرگترین محرک رفتار من باشند به همین دلیل یک تغییر کوچک در آنچه میبینید میتواند به یک تغییر بزرگ در اعمالتان منجر شود در نتیجه میتوانید تصور کنید که زندگی و کار در محیطهایی که با سرنخهای مفید پرشدند و اجتناب از محیطهای غیر مفید تا چه اندازه اهمیت دارد خوشبختانه اخبار خوبی در این زمینه وجود دارند. لزومی ندارد که قربانی محیطتان باشید. میتوانید در نقش معمار آن نیز ظاهر شوید. چگونه محیط خود را برای موفقیتتان طراحی کنید. در حین بحران انرژی و تحریم نفت در دهه هفتاد میلادی محققان هلندی کم کم توجه خود را به مصرف انرژی در کشور خودشان معطوف کردند. در یکی از حوم های نزدیک آمستردام آنها صاحب هایی را یافتند که مصرف انرژیشان سی درصد کمتر از همسایه ها بود. با اینکه خانه هایشان به یک اندازه بود، و برق را با قیمت یکسان دریافت می کردند. مشخص شد که خانه های این محله در همه چیز یکسان بودند، بجوز یک ویژگی که تفاوتشان را رقم میزد. موقعیت کنتر خانه برخی کنتر را در زیر زمین گذاشته بودند، برخی دیگر کنتر را در طبقه بالا و در راه روی اصلی قرار داده بودند. همانطور که می توانید حدس بزنید خانه هایی که کنترشان در راه روی اصلی قرار داشت همانهایی بودند که مصرف برقشان کمتر بود. وقتی میزان مصرف انرژیشان مشهود و بسادگی قابل رهگیری بود افراد رفتارشان را عوض کردند. هر عادت با یک سر نخت آغاز میشود و احتمال اینکه سرنخهای برجسته مشهود تر باشند بیشتر است. متاسفانه محیط هایی که در آن زندگی و کار میکنیم غالباً انجام ندادن برخی کارها را برایمان ساده میکنند زیرا هیچ سرنخ مشهودی برای تحریک آن رفتار وجود ندارد. وقتی گیتارت داخل کوموت خاک میخورد، خیلی ساده است که گیتار زدن را تمرین نکنی. وقتی قفسه کتاب هایت در گوشه اتاق مهمان ها قرار گرفته است خیلی ساده می شود کتاب نخواند. وقتی ویتامین هایت در محلی دور از دسترس در آشپزخانه قرار دارند به سادگی می توان مصرفشان را فراموش کرد. وقتی سرنخ‌های های تحریک کننده یک عادت خیلی جزئی یا پنهان باشند به سادگی میتوان آنها را نادیده گرفت از سوی دیگر ایجاد سرنخهای بسری مشهود میتواند نظر شما را به ایجاد یک عادت مطلوب جلب کند در اوایل دهی نود میلادی خدمه تمیزکاری فرودگاه اسخیپول آمستردام یک برچسب به کوچک شبیه به مگس را در وسط توالت فرنگی هایشان نسب کردند. ظاهراً وقتی مردها به این توالتها میرفتند سعی می همین حشره را با ادرارشان هدف بگیرند. این برچسبها کاری کردند که هدفگیری افراد بهتر شد و میزان برون ریز ادرار پیرامون توالت به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد. تحلیل‌های بیشتر نشان دادند که همین بچسب‌ها باعث شدند هزینه تمیزکاری دستشویی سالانه هشت درصد کاهش پیدا کند قدرت سرنخای مشهود را در زندگی خودم تجربه کردم عادت داشتم که از فروشگاه سیب بخرم آنها را در جا پایین یخچال بگذارم و به کل آنها را از یاد ببرم تازه زمانی به یادشان میافتادم که سیب ها پوسیده شده بودند. هیچگاه آنها را نمیدیدم، بنابراین هیچ وقت هم اقدام به خوردنشان نمیکردم. ناگهان توصیه خودم را به کار گرفتم و محیط را از نو طراحی کردم. یک کاسه بزرگ و شکیل گرفتم و آن را وسط اوپن آشپزخانه گذاشتم. دفعه بعد که سیب خریدم، آنها را داخل این کاسه گذاشتم جایی که بتوانم به راحتی آنها را ببینم به شکلی جادویی از آن به بعد روزی چند سیب میخوردم، چون دیگر در معرض دیدم قرار داشتند در اینجا چند راهکار ارائه شد که می‌توانید محیط خود را از نو طراحی کنید و اثر نقهایی بسازید تا های مد نظرتان مشهود تر شوند اگر میخواهید یادتان بیاید که هر شب داروهایتان را مصرف کنید قوطی قرص خودتان را مستقیما کنار شیر آب دستشویی بگذارید. اگر دوست دارید گیتار را به شکل منظمتری تمرین کنید آن را در وسط اتاق نشیمن قرار دهید. اگر می‌خواهید یادتان بماند که یاد داشتهای تشکر بیشتری را ارسال کنید، تعدادی از برچه از پای مربوطه را روی میز کارتان قرار دهید. اگر می آب بیشتری بنوشید، هر روز صبح تعدادی بطری آب پر کنید و آنها را در موقعیتهای پررفت و آمد خانه قرار دهید. اگر میخواهید یک عادت به بخشی از زندگی شما تبدیل شود آن سرنخ را به بخش بزرگی از محیط خود تبدیل کنید پایدارترین رفتارها معمولاً چندین سرنخ دارند مثلا مکان‌ها و موقعیتهای مختلفی که یک سیگاری میتواند به روشن کردن سیگار و استعمال آن ترقیب شود را در نظر بگیرید هنگام رانندگی در ماشین دیدن یک دوست سیگاری زمانی که تحت فشار کاری است و غیره همین استراتژی می تواند برای عادت خوب به کار گرفته شود با پخش و پلا کردن محرک ها در جای جای محیط اطرافتان می توانید احتمال این را که در سرتاسر روز به آن عادت فکر کنید افزایش دهید. مطمئن شوید که بهترین انتخابهایتان مشهود ترین موارد هستند. وقتی سرنخ‌های عادات خوب دقیقا جلوی چشمتان قرار دارند، اتخاذ یک تصمیم بهتر خیلی ساده و طبیعی خواهد بود. طراحی محیط قدرت زیادی دارد، نه صرفا به این خاطر که بر نحوه تعاملتان با دنیا تأثیر می‌گذارد. بلکه به خاطر اینکه به ندرت آن را انجام می دهیم، اکثر افراد در دنیایی زندگی می کنند که دیگران برایشان ساخته اما می توانید مکانی را که در آن زندگی و کار می کنید تغییر دهید تا میزان قرار گرفتنتان در معرض سرنخ های مثبت افزایش یابد و ریسک بودن در معرض سرنخ منفی نیز کمتر شود طراحی محیط به شما اجازه می‌دهد دوباره کنترل را به دست بگیرید و به معمار زندگی خود تبدیل شوید طراح دنیای خود باشید نه کار کاربر آن چهارچوب همان سرنخ است سرنخ‌هایی که یک عادت را تحریک می‌کنند می به صورت خیلی دقیق و اختصاصی آغاز شوند، اما در گذر زمان عادتهایتان نه با یک محرک صرف، بلکه با کل چهارچوب پیرامون رفتار همراه می شوند. مثلا، بسیاری از افراد در موقعیتهای جمعی بیش از شرایطی که تنها هستند، می نوشند. کم پیش میآید که محرکشان برای این رفتار، یک سرنخ نخ صرف باشد بلکه کل موقعیت اینچنین چنین ایجاب میکند مشاهده دوستانی که نوشیدنی سفارش میدهند شنیدن موسیقی در بار مشاهده آبجوهایی که از داخل بشکه ها سرازیر میشوند به صورت ذهنی عادت هایمان را به موقعیت های مکانی که آنها رخ میدهند نسبت میدهیم. خانه دفتر کار باشگاه هر موقعیت نوعی ارتباط را با عادت و روتین های ما توسعه می دهد شما رابطه بخصوصی را با اشیای روی میز کارتان آیتم های روی اوپن آشپزخانه یا اشیای داخل اتاق خوابتان برقرار می کنید رفتار ما نه توسط اشیای محیط بلکه بر اساس رابطه ما با آنها تعریف می شوند در واقع صرفاً مد نظر قرار دادن تأثیر محیط بر رفتارتان یک روی کرده فکری مفید است. محیط خود را به گونه ای تصور نکنید که انگار با اشیای مختلف پر شده است، بلکه آن را پر از روابط مختلف تصور کنید. به نحوه تعاملتان با محیطهای پیرامون فکر کنید. مثلا یک آدم هر شب به مدت یک ساعت روی مبلش می نشیند و کتاب میخواند اما برای یک نفر دیگر مبل جایی برای تماشای تلویزیون و خوردن یک کاسه بستنی پس از اتمام ساعت کاری است. افراد مختلف می توانند حافظه های متفاوت و بدین ترتیب عادت های متفاوتی را در قبال یک مکان یکسان داشته باشند خبر خوب؟ می توانید خودتان را آموزش دهید که یک عادت به خصوص را با یک محیط به خصوص پیوند بزنید در یک مطالعه دانشمندان به بیخوابها توصیه کردند که فقط هنگام خستگی به داخل رخت خوابهایشان بروند اگر نتوانستند بخوابند در یک اتاق دیگر بنشینند تا حس خوابالودگی به سراغشان بیاید. کم کم سوژه ها یاد گرفتند که چهارچوب رخت را مترادف با خوابیدن بدانند و به همین دلیل وقتی وارد رخت خوابشان می شدند خوابشان می برد. مغزان ها یاد گرفت که خوابیدن تنها کاری است که باید در آن اتاق رخ دهد. نه رفتن با گوشی، نه تماشای نزول نه زل زدن به ساعت. همچنین قدرت چهارچوب یک استراتژی مهم را افشا می کند. عادتها می توانند در یک محیط جدید به شکل ساده تری عوض شوند. این محیط جدید کمک می کند از محرک ها و سر نخ های خفیفی که شما را به سمت عادتهای کنونی هول می دهند فرار کنید به یک مکان جدید بروید یک کافی شاپ جدید یک نیمکت در پارک یک گوشه اتاق که به ندرت از آن استفاده می کنید و روتین جدیدی را برای آنجا بسازید ارتباط دادن یک عادت نو با یک چهارچوب جدید ساده تر است تا اینکه بخواهید یک عادت جدید را در حضور سرنخهای رقیب و کنونی بسازید. اگر هر شب در اتاق خوابتان تلویزیون تماشا می کنید زود خوابیدن در آنجا می تواند دشوار باشد. اگر همیشه عادت دارید که در اتاق نشیمن با کنسولتان بازی کنید درس خواندن در آنجا دشوار است. اما وقتی از محیط نرمال خود بیرون می آیید، گرایش های رفتاریتان را کنار می گذارید، دیگر با سرنخ محیطی پیشین نمی جنگید و بدین ترتیب می توانید آدت جدید را بدون مداخله آنها بسازید. دوست دارید تفکرتان خلاقانه تر شود؟ به یک اتاق بزرگتر یا پاسیوی زیر شیروانی یا یک ساختمان با معماری گسترده‌تر بروید، از آن مکانی که کارهای روزمرهیتان در آن انجام می شود و بدین ترتیب با الگوهای فکری فعلیتان همراه هست جدا شوید. دوست دارید خوراک سالم تری داشته باشید؟ احتمالا همیشه به یک سوپرمارکت خاص می روید و پروسه خرید با همان کالاهای همیشگی پیش می روید. پس یک فروشگاه جدید را امتحان کنید شاید در این صورت مغزتان دیگر آن رویهی که به صورت ناخداگاه در فروشگاه پیشین شکل گرفته است را کنار بگذارد و بتوانید از غذاهای ناسالم دوری کنید وقتی شرایطش را ندارید که به یک محیط کاملا جدید وارد شوید محیط کنونی خود را از نو تعریف کنید یا چیدمانش را تغییر دهید. یک مکان جداگانه را برای کار، مطالعه، ورزش، سرگرمی و آشپزی بسازید. شعار یک مکان، یک کاربرد برای من مفید است. وقتی حرفه خودم را به عنوان یک کارآفرین آغاز کردم، غالبا روی موبل یا پشت میز آشپزخانه کار می کردم. اروپا به سختی می توانستم دست از کار بکشم. هیچ تمایز مشخصی میان پایان ساعت کاری و زمان شروع تفریح و زندگی شخصیم وجود نداشت. آیا میز آشپسخانه محل کارم بود یا مکانی که باید در آن غذا می خوردم؟ آیا مبل محلی برای استراحت بود؟ یا جایی که باید ایمیل هایم را میفرستادم. تمام اتفاقات در یک مکان واحد رخ می دادند. چند سال بعد بالاخره توانستم به خانه این نقل مکان کنم که یک اتاق جدا به عنوان دفتر کار داشت. ناگهان شرایط طوری شد که کار باید در اینجا انجام میگرفت و زندگی شخصی در جای دیگر، رخ میداد دیگر برایم راحت تر بود که وجه حرفه‌ای مغزم را خاموش کنم و از سراغ زندگی شخصی بروم زیرا تمایز مشخصی میان زندگی کاری و زندگی خانگی وجود داشت هر اتاق کاربرد اصلی خودش را داشت آشپزخانه برای پخت و پز و دفتر برای کار بود هر زمان که امکان داشت سعی کنید چهارچوب وقوع یک عادت را با چهارچوب دیگری قاطی نکنید وقتی اختلاط چهارچوب ها را آغاز کردید جنگ میان عادت ها آغاز خواهد شد و در این شرایط معمولاً عادت های ساده تر پیروز می شوند دقیقاً به همین دلیل است که گستردگی تکنولوژی مدرن می تواند یک نقطه قوت و در آن واحد یک نقطه ضعف باشد میتوانید از تلفن خود برای انواع و اقسام وظایف بهره بگیرید که آن را به یک دستگاه قدرتمند تبدیل میکند اما وقتی میتوانید از آن تقریبا برای انجام هر کاری بهره بگیرید به سختی میتوان در هر لحظه آن را فقط به یک وظیفه اختصاص داد دوست دارید وری داشته باشید اما ذهنتان شرطی شده که هر زمان گوشی باز می شود با آن به شبکه های اجتماعی بروید ایمیل بفرستید و بازی کنید این آششول قلمکاری از سر های مختلف است شاید با خودتان بگویید تو چه می فهمی؟ من در نیویورک زندگی می کنم آپارتمان من به اندازه یک گوشی هوشمند است. هر اتاق من باید چند نقش را به صورت همزمان ایفا کند. حرفتان حق است. اگر فضای شما محدود است، اتاق خود را به چند منطقه فعالیت جداگانه تقسیم کنید. یک صندلی برای خواندن، یک میز تحریر برای نوشتن، یک میز غذاخوری برای خوردن. می همین کار را با فضاهای دیجیتالتان انجام دهید. نویسنده ای را می شناسم که از کامپیوتر فقط برای نوشتن استفاده می کند. تبلتش فقط برای مطالعه است و گوشی نیز فقط برای شبکه های اجتماعی و ارسال پیامک استفاده می شود. هر عادت باید منزلگاهی داشته باشد. اگر بتوانید به این استراتژی پایبند بمانید، هر چهارچوب با یک عادت به خصوص و مود فکری خاص همراه خواهد شد. عادتها تحت چونین شرایطی که پیشبینی پذیرند رشد می کنند. وقتی پشت میز کارتان می نشینید، تمرکزتان ناخداگاه روی کار می رود. وقتی در فضایی که برای ریلکس شدن ساخته شده است قرار می گیرید، کسب آرامش راحتتر می شود اگر از اتاق خوابتان فقط برای خوابیدن استفاده کنید خواب سریعتر به چشمانتان خواهد آمد. اگر خواهان رفتارهای باثبات و قابل پیش هستید باید محیطی باثبات و پیش پذیر داشته باشید. یک محیط باثبات که هر چیز دارای جایگاه خودش است. و هر هدف محیط مختص خودش را دارد جایی است که عادتها ها به راحتی شکل می گیرند. خلاصه فصل اعمال تغییرات کوچک در چارچوب می تواند به تغییرات بزرگ و تدریجی در رفتارتان ختم شود هر عادت با یک سرنخ آغاز می شود احتمال اینکه سرنخ‌های برجسته به چشممان بیایند بسیار بیشتر است سرنخ‌های های خوب را به شکلی مشهود در محیط پیرامونتان قرار دهید معمولاً آدت های شما نه با یک محرک خاص بلکه با کل چهارچوب پیرامون آن رفتار همراه هستند آن چهارچوب به سرنخ شما تبدیل می شود. ایجاد عادت جدید در محیط جدید ساده تر است زیرا لزومی ندارد در آنجا با سرنخ های قدیمی بجنگی. شخصی. در سال 1971 و زمانی که جنگ ویتنام در حال ورود به 16 مین سالش بود، رابرت استیل که نماینده ایالت کانکتیکت و مورگان مورفی که نماینده ایالت ایلینویز در کنگره بودند، کشفی انجام دادند که جامعه امریکا را متحیر کرد. آنها حین بازدید از نیروهای ارتش متوجه شدند بالای پانزده درصد از سربازان آمریکایی حاضر در آنجا معتاد به هروین بودند. تحقیقات آتی نشان داد که سی و پنج درصد از سربازان در ویتنام هروین را امتحان کرده بودند و 20 درصدشان به مصرفش اعتیاد داشتند مشکل از آن چیزی که در ابتدا فکر می کردند بدتر هم شده بود این مکاشفه موجب سراسیمگی زیادی در واشنگتن شد که از جمله آن می توان به ایجاد اداره عملیاتی ویژه برای جلوگیری از استعمال مواد مخدر تحت نظارت رئیس جمهور نیکسون اشاره کرد تا جلوگیری از مصرف، و توانبخشی را ترویج دهد و اعضای معتاد را پس از بازگشتشان به خانه تحت نظر بگیرد. لی رابینز یکی از محققان مسعود بود. در یکی از یافته هایی که برخلاف باورهای عموم درباره اعتیاد بود، رابینز متوجه شد که پس از مراجعت سربازان معتاد به خاک آمریکا. فقط پنج درصدشان، پس از یک سال مجددن به مصرف مواد آوردند و طی سه سال آینده نیز فقط دوازده درصدشان دوباره مصرف کردند. به عبارت دیگر از هر ده سربازی که در ویتنام هروئین مصرف می کردند حدودن نه نفرشان تقریبا یک شبه اعتیاد به آن را رها کردند. این نتیجه با دیدگاه غالبی که در آن دوران وجود داشت در تضاد بود زیرا آن زمان اعتقاد داشتند که اعتیاد به هروین یک وابستگی دائمی و بازگشت ناپذیر است. در عوض رابینز نشان داد که اعتیاد میتواند در صورت تغییر رادیکال در محیط خود به خود از بین برود. در ویتنام سربازان کل روز با سر نخهایی مواجه میشدند که استفاده از هروئین را برای آنها تحریک می کرد، دسترسی به هروئین ساده بود استرس مداوم جنگ آنها را فرا گرفته بود آنها با همتایان سربازانشان که مصرف کننده هروئین بودند ارتباط نزدیکی داشتند و هزاران مایل از خانه خود دور بودند وقتی یک سرباز به آمریکا برمیگشت خودش را در محیطی میدید که میتوانست از این محرک ها دوری کند وقتی چهارچوب عوض شد عادت هم از بین رفت این موقعیت را با یک مصرف کننده مواد در شرایط معمول مقایسه کنید فردی که در خانه یا کنار دوستانش معتاد می شود به کلینیک میرود تا پاک شود که به معنای دوری از همه محرک های محیطی برای اقدام به آن عادت است سپس دوباره به محله قدیمی خودش برمیگردد که کماکان همان سرنخ‌های قدیمی و عواملی که پیشتر باعث اعتیادش شده بودند در آن قرار دارند جای تعجب ندارد که در مطالعه چنین افرادی آمارها دقیقاً معکوس آنچه هستند که در داستان ویتنام مشاهده شد. معمولاً 90 درصد از مصرف کنندگان هروئین پس از بازگشت از دوره توانبخشی یک بار دیگر به دام اعتیاد گرفتار می شوند. مطالعات ویتنام نتایجی متضاد با بسیاری از باورهای فرهنگی ما درباره عادات بد را نشان دادند. زیرا یاد گرفته ایم که یک رفتار ناسالم را به زعف اخلاقی و روحی نسبت بدهیم. اگر وزنتان زیاده است سیگاری هستید یا مواد می کشید در کل عمرتان به شما گفتند که این مشکلات به خاطر فقدان کنترل روی خودتان است. شاید حتی ادعا کنند که آدم بدی هستید. این ایده که مقدار اندکی نظم و دیسیپلین می تواند همه مشکلات را حل کند عمیقا در فرهنگ ما ریشه دوانده است اما تحقیق اخیر یک نکته کاملا متفاوت را نشان داده است وقتی دانشمندان روی افرادی مطالعه کردند که ظاهرا کنترل قابل توجهی روی خودشان داشتند مشخص شد این افراد آنقدر هم با کسانی که در تقلا بودند فرق نمی کنند. در عوض افراد قاعد مند توانایی بهتری در سازماندهی زندگی خود دارند. بگونه ای که به اراده قهرمانانه و کنترل خودشان نیازی پیدا نمی کنند. به عبارت دیگر آنها وقت کمتری را برای موقعیت های کننده می‌گذرانند. افرادی که بیشترین کنترل را روی خودشان دارند، معمولا آنهایی هستند که کمتر از آن بهره می گیرند. هرقدر کمتر خودتان را محدود کنید، اجرای این محدودیتها برایتان ساده تر خواهد بود. قبول دارم که صبات قدم، شهامت و قدرت اراده از لازمه های موفقیتند، اما برای بهبود در این ویژگی ها نباید خودتان دیسیپلین بیشتری داشته باشید، بلکه باید محیطی با دیسیپلین بیشتر داشته باشید. این ایده که برخلاف باور عمومی است، زمانی منطقی تر خواهد شد که از فعل و انفعالات مغز در زمان شکلگیری عادت با خبر شوید. عادتی که در ذهن کدگذاری شده آماده است که در زمان وقوع موقعیتهای مرتبط، مورد استفاده قرار بگیرد وقتی پتی اولول یک تراپیست اهل آستین تگزاس شروع به استعمال دوخانیات کرد غالباً هنگام اسب دوانی به همراه دوستش سیگار می کشید سرانجام او سیگار کشیدن را ترک کرد و حسیال آن را کنار گذاشت او سوارکاری را هم متوقف کرده بود دههها گذشت تا اینکه دوباره بر زین اسب سوار شد و دقیقا همین جا بود که پس از مدتها هوس سیگار کشیدن به سرش زد. سرنخوا کماکان در درون او وجود داشتند. او صرفا به مدت طولانی در معرض آنها قرار نگرفته بود. وقتی یک عادت کدگذاری شد پس از ظهور سرنخ های محیطی مربوط به آن. برای انجامش وسوسه خواهید شد این یکی از دلایلی است که تکنیک‌های تغییر رفتار می توانند پیامدهای منفی داشته باشند وقتی کلیپ ها و اسلایت های مربوط به تکنیک های کاهش وزن را به افراد چاق ارائه میدهید و آنها را خجالت زده میکنید باعث می کنید با شود تحت فشار قرار بگیرند و در نتیجه بسیاری از آنها به همان استراتژی محبوب خود بازگردند خوردن بیش از حد نمایش تصاویر ریه‌های تیره شده به افراد سیگاری باعث می‌شود استرابشان بیشتر شود و به همین دلیل تعداد زیادی از آنها به کشیدن سیگار روی می‌آورند اگر به سر سرنخ‌ها دقت نکنید امکان دارد همان رفتاری که می متوقف کنید تحریک شود. های بد خودمحرک هستند. این پروسه خودش را تغذیه می کند. آنها همان احساساتی که در پی از بین بردن آن هستید را پرورش می دهند. حس بدی دارید. این سراغ خوردن فست فود و غذای ناسالم می روید. از سو به خاطر خوردن غذای ناسالم حس بدی پیدا می کنید. تماشای تلویزیون باعث می شود حس تنبلی و کرختی پیدا کنید. بنابراین چون انرژی لازم برای کارهای دیگر را ندارید باز هم به تماشای تلویزیون ادامه می دهید. نگرانی درباره سلامتی باعث می شود مسترب شوید که همین امر شما را به کشیدن سیگار برای تسکین استرابتان تحریک می‌کند در حالی که سیگار وضع سلامتیتان را بدتر خواهد کرد و مستربتر از قبل خواهید شد این یک راه پله است به سمت سقوط و قطاری است که به سمت عادت‌های بد حرکت می‌کند محققان این پدیده را تحت عنوان خواسته های القا شده بر اثر سر سرنخ میشناسند یک محرک بیرونی که موجب ایجاد نوعی حس استقرار برای تکرار یک عادت بد می شود وقتی فلان مورد به چشمتان آمد دلتان آن را میخواهد این پروسه همواره در حال وقوع است غالباً بدون اینکه متوجه آن شویم دانشمندان دریافتند که اگر تصویر کوکائین را فقط به مدت 33 میلی ثانیه به معتادان نشان دهید سامانه پاداش مغزشان فعال خواهد شد و میل به مصرف آن در وجودشان جرقه میزند. سرعت این پردازش در مغز آنقدر بالاست که امکان دارد معتادها حتی مشاهده آن تصویر را به خاطر نیاورند اما در هر حال وصفصه مصرف مواد به سرشان میزند لب کلام اینجاست می توانید یک عادت را بشکنید اما احتمال فراموش کردن آن اندک است وقتی یک شیار ذهنی خاص در گوشه ای از مغزتان شکل گرفت تقریبا محال است که بتوانید آن را به صورت کامل از بین ببرید حتی اگر برای مدتی بدون استفاده بماند بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که صرفن مقاومت در برابر وسوسه یک استراتژی غیر موثر است اگر زندگی شما به گونه است که شلوغ کاری و مداخله زیادی در آن رخ میدهد اجرای منظم فرایند مدیتیشن دشوار خواهد شد انرژی زیادی از شما می گیرد. در کوتاه مدت می توانید بر این وسوسه غلبه کنید. اما در طولانی مدت به محصولی از محیطی تبدیل می که در آن زندگی می کنیم. سراحتاً عرض کنم که هیچگاه ندیدم فرد بتواند در یک محیط منفی به عادتهای مثبت خود پایبند بماند. یک رویکرد مطمئنتر می تواند قطع عادت های بعد از منبع باشد. یکی از عملیترین روی کردها برای حذف عادت های بد کاهش قرار گرفتن در معرض سرنخ است که موجب تحریک آنها می شوند. اگر شرایط توریست که نمی توانید هیچ کاری را پیش ببرید، گوشی خود را به مدت چند ساعت، در یک اتاق دیگر بگذارید اگر من حس می کنید به اندازه کافی خوب نیستید دنبال کردن حسابهای شبکه های اجتماعی را که موجب حسادت و حسرتتان می شوند، متوقف کنید اگر وقت زیادی را پای تماشای تلویزیون هدر می دهید تلویزیون را از اتاق خوابتان بیرون ببرید اگر پول زیادی را صرف خرید دستگاه‌های الکترونیکی می‌کنید، دیگر مطالب مربوط به تولیدات جدید دنیای تکنولوژی را نخوانید. اگر بیش از حد با کنسول بازی می‌کنید، پس از هر بار استفاده آن را از برق بکشید و داخل کمد بگذارید. این رویه در واقع معکوس قانون اول تغییر رفتار است. به جای اینکه آن را شفاف و آشکار کنید، می آن را مخفی کنید. خودم وقتی میزان تاثیرگذاری تغییرات کوچک و اینچنینی را مشاهده می کنم، غالباً غافلگیر می شوم. یک سر نخ خاص را حذف کن، کل آن عادت از بین میرود. کنترل شخصی یک استراتژی کوتاه مدت است، نه چیزی که برای بلند مدت جواب بدهد. شاید بتوانید یک یا دو بار در برابر وسوسه مقاومت کنید اما احتمالش اندک است که بتوانید اراده لازم را داشته باشید تا هر بار تمایلات خود را نادیده بگیرید به جای اینکه هر بار مقدار جدیدی از اراده را برای انجام کار صحیح فرا بخوانید بهتر است انرژی خود را صرف سزی محیط کنید این راز کنترل شخصی است سرنخ‌های مربوط به عادات خوب را در معرض دید بگذارید و سرنخ‌های عادات بد را مخفی کنید خلاصه فصل معکوس قانون اول تغییر رفتار این است آن را مخفی کنید زمانی که یک عادت شکل گرفت احتمال اینکه فراموش شود اندک است افرادی که کنترل زیادی روی خودشان دارند کمتر از سایرین با موقعیت‌های وسواس انگیز مواجه می‌شوند برای آنها نادیده‌گیری وسوسه ساده‌تر از مقاومت در برابر آن است یکی از عملی ترین راه راه‌های حذف یک عادت بد این است که کمتر در معرض سر های محرکان قرار بگیرید. کنترل شخصی یک استراتژی کوتاه مدت است و برای بلند مدت جواب نمی دهد نحوه ایجاد یک عادت خوب قانون اول آن را شفاف و آشکار کنید.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 قانون سوم، آن را ساده کنید. قانون چهارم، آن را رضایت بخش کنید. نحوه شکستن یک عادت بعد قانون اول، آن را مخفی کنید. پنج یک، میزان قرار گرفتن خود، در معرض آنها را کاهش دهید. سرنخ‌های عادات بد را از محیط خود حذف کنید. قانون دوم آن را غیر جذاب کنید. قانون سوم آن را دشوار کنید. قانون چهارم آن را عامل نارضایتی کنید.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 8. چگونه یک عادت را غیر قابل مقاومت کنید؟ در دهه چهل میلادی یک دانشمند هلندی به نام نیکو تیمبرگن، مجموعه ای از آزمایشاتی را انجام داد که درک ما را از عوامل انگیزاننده متحول کرد تیمبرگن که سرانجام به خاطر کارش برنده جایزه نوبل شد در حال تحقیق روی گاکی شمالی بود پرندهای سفید و خاکستری که غالباً در خط ساحلی آمریکای شمالی پرواز می گاکی‌های بالغ یک نقطه قرمز رنگ کوچک را روی منقارشان دارند و تیمبرگن متوجه شد جوجه‌هایی که تازه از تخم در آمدند در صورت گرسنه بودن این نقطه را نوک میزنند. برای شروع یک آزمایش او مجموعه‌ای از منقارهای مقوایی و تقلبی درست کرد که صرفا نوک بودند و بدنی به آنها متصل نبود وقتی والدین پرواز می کردند او به لانه پرنده ها می رفت و این منقارهای تقلبی را پیش روی جوجه ها می گذشت. مشخص بود که منقارها تقلبی هستند و پیش خودش فکر می کرد که جوجه پرنده ها آنها را قبول نخواهند کرد اما وقتی گاکی های کوچک آن نقطه قرمز روی منقار مقوایی را دیدند نک زدن به آن را شروع کردند انگار که واقعا منقار مادرشان است مشخصا آنها به این لکه‌های قرمز علاقه داشتند انگار برنامه‌ریزی ژنتیکی آنها از زمان تولد چنین بوده است خیلی زود تیمبرگن متوجه شد که هر قدر لکه قرمز بزرگتر شود جوجهها سریعتر به آن نوک می زنند. سرانجام، او منقاری ساخت که سلکه قرمز بزرگ داخل آن قرار داشتند. وقتی این منقار را داخل لانه گذاشت، جوجهها از خوشی دیوانه شده بودند. آنها روی تکه های قرمز و کوچک نوک می زدند و انگار بزرگترین منقاری بود که تا حالا دیده بودند. تیمبرگن و همکارانش رفتارهای مشابهی را در حیوانات دیگر مشاهده کردند. مثلا غاز خاکستری پرنده است که روی زمین لانه می سازد. گاهی اوقات وقتی مادر به دور لانه میچرخد اگر یکی از تخمها قلت بخورد و داخل علف‌های کنار لانه برود غاز به سمت تخم می‌رود و از منقار و گردن خودش برای کشاندن آن به سمت لانه بهره میگیرد تیمبرگن متوجه شد که گاز هر جسم گرد اطراف لانه اعم از توپ بیلیارد یا لامپ را به سمت لونه خود میکشاند هر قدر آن جسم بزرگتر باشد واکنش گاز شدیدتر خواهد بود حتی یکی از گازها تلاش قابل توجهی انجام داد تا یک توپ والیبال را به داخل لانه خود بکشد و روی آن بنشیند همانطور که جوجه گاکی ها به طور خودکار به نقاط قرمز نوک می‌زدند قاز خاکستری نیز از حکم غریزه خود پیروی می‌کند وقتی یک جسم گرد را دور اطرافم می‌بینم باید آن را به داخل لانه برگردانم هر قدر جسم گرد بزرگتر باشد باید بیشتر برای آوردن آن تلاش کنم انگار مغز هر حیوان با یک سری قوانین معین رفتاری پر شده است و وقتی به یک نسخه اقراق شده از آن قانون میرسد همچون یک درخت کریسمس نورانی می شود و جان میگیرد دانشمندان این سرنخهای اقراق شده را تحت عنوان محرک فراطبیعی مینامند یک محرک فراطبیعی نسخه ارتقا یافته از واقعیت است مانند منقاری که سنخت داشت یا تخمی که به اندازه توپ والیبال بود و واکنش شدید تر از حد معمول را تحریک می کند انسان ها نیز در برابر نسخه های اقراق شده ی واقعیت آسیب پذیرند مثلا غذا های ناسالم سیستم پاداش ما را به سمت جنون می برند. بشر پس از اینکه صدها هزار سال را صرف شکار و جستجوی غذا در طبیعت کرد، مغزش به گونه ای تکامل یافت که ارزش بالایی را برای نمک، قند و چربی قائل می شود. چون این غذاهایی غالباً انباشته از کالری هستند و در زمانی که اجداد باستانی ما در دشتهای بیدرخت و زمینهای وحشی به دنبال غذا بودند، یافت نمی شدند. در آن دوران وقتی نمیدانستید وعده غذای بعدی شما از کجا می آید بقا این بود که تا می توانید بخورید اما امروز در یک محیط سرشار از کالری زندگی می کنیم. غذا زیاد است اما مغز شما کماکان به گونه ای تمع دارد و حوض می کند که انگار کمبود غذا داریم اینکه ارزش بالایی را برای نمک قند و چربی قائل شویم دیگر به نفع سلامت نیست اما این وسوسه کماکان وجود دارد زیرا مرکز پاداش مغزمان حدوداً پنجاه هزار سال بدون تغییر مانده است صنعت غذای مدرن روی تداوم قرائز پالیولیتیک ما که فراتر از مقصود تکاملی خود حرکت می کنند حساب باز کرده است یکی از اهداف اولیه علوم غذایی ایجاد محصولاتی است که جذابیت بیشتری برای مصرف کنندگان داشته باشند تقریبا هر غذایی که داخل کیسه جعبه یا شیشه گذاشته می شود به نوعی ارتقا یافته است حتی اگر صرفا تم دهنده به آن اضافه کرده باشند کمپانی ها میلیون دلار هزینه می کنند تا بهترین میزان تردی در چیپس، سیب زمینی یا مقدار ایدئال گاز در نوشابه را بیابند، همه دپارتمان ها توان خود را به سازی حس محصول در دهان شما اختصاص میدهند. ویژگی که آن را حس دهانی مینامند. مثلا سیب زمینی سرخ شده ترکیبی قدرتمند است. رنگ طلایی، ای و بافت ترد در بیرون و رنگ روشنتر و بافت ملایمتر در داخل سایر غذاهای فراوری شده نیز موجب ارتقای کنتراست دینامیک می شوند. این اصطلاح به مواردی اشاره می کند که ترکیبی از حواس نظیر ترد و خامعی را به صورت تو دارند کش آمدن پنی را آب شده روی یک تکه پیتزای ترد را تصور کنید یا تردی روی شیرینی اوریو که داخلش بافت نرم و ملایمی دارد. در غذاهای طبیعی و فراوری نشده شما همان حواس تکراری را بارها و بارها تجربه می کنید. گاز کلم همان تعم اولیه را می دهد. پس از گذشت چند دقیقه مغزتان علاقه را از دست می دهد و حس سیری پیدا می کنید. اما غذاهایی که کنتراست دینامیک بالایی داشته باشند باعث می شوند چیز جدید و جالبی را تجربه کنید و بدین ترتیب ترغیب میشوید بیشتر بخورید. در نهایت چون این باعث شد دانشمندان علوم غذایی بتوانند یک نقطه بهینه را برای هر محصول بیابند. ترکیب دقیقی از قند، نمک و چربی که مغزتان را به هیجان می آورد و کاری می کند مقدار بیشتری را طلب کنید البته در نتیجه پرخوری میکنید زیرا غذاهای بسیار خوش طعم جذابیت بیشتری برای مغز انسان دارند همانطور که استفان گوینت عصبشناس حوزه رفتار غذایی و چاقی گفت در زمینه فشار آوردن به دکمه های خودمان مهارت زیادی کسب کرده ایم صنعت غذای مدرن و آدات پرخوری که ایجاد کرده یکی از نمونه‌های قانون دوم تغییر رفتار است آن را جذاب کنید هر قدر فرصتی جذاب تر باشد احتمال اینکه یک عادت شکل بدهد بیشتر خواهد بود به دور اطراف خود نگاه کنید جامعه با نسخه‌های کاملا مهندسی شده از واقعیت پر شده که جذابتر از دنیای نیاکان من است فروشگاه ها از مانکنهایی با اندامی برجسته بهره می‌گیرند. تا لباس را بفروشند رسانه های اجتماعی لایک ها و تمجید های بیشتری را فقط طی چند دقیقه به ما ارائه می کنند. چیزی که نمی در خانه و محیط کار به آن برسیم پرن آنلاین سحنه های تحریک کننده را به شکلی کنار یکدیگر تدوین می کنند که نمی‌توان در زندگی واقعی جایگزینی برای آنها پیدا کرد. تبلیغات با ترکیبی از نور پردازی ایدئال، آرایش حرف و عدید های ساخته می شوند. حتی مدل هم شبیه به شخصی که در تصویر نهایی ظاهر می شود نیست. اینها محرک های فراتبیعی در دنیای مدرن ما هستند. آنها ویژگیهایی که ذاتا برای ما جذابند را با اغراق بسیار ارائه میکنند و به همین دلیل غرای زمان وحشی میشوند و در نتیجه به سمت عادت به خریدهای بیش از حد عادت به رسانههای اجتماعی عادت به خوراک و بسیاری عادات دیگر میرویم اگر تاریخ را چراغ رحمان قرار دهیم متوجه میشویم که فرصت های آینده جذابتر از امروز خواهند بود. روی کرد پیش رو چونین است که پاداش ها متمرکز تر و محرک ها فریبنده تر می شوند. غذای ناسالم فرم متمرکز تری از کالری را نسبت به غذاهای طبیعی دارد. مشروبات سنگین تر فرم متمرکز تری از الکل را نسبت به نوشیدنی های طبیعی دارند. بازی های ویدیویی فرم متمرکزتری از سرگرمی را نسبت به بازی های فکری و دور همی دارند. این تجربیات لذت بخش و متمرکز در قیاس با طبیعت به ای هستند که به سختی میتوان در برابرشان مقاومت کرد. ما همان مغز اجدادمان را داریم، اما وسوسه‌های پیش روی است که آنها هرگز ندیده بودند. اگر میخواهید احتمال وقوع یک رخداد را افزایش دهید، باید آن را جذاب کنید. در بحثمان روی قانون دوم، هدف این بود که یاد بگیریم چگونه عادتهای را غیر قابل مقاومت کنیم، در حالی که نمیتوان هر عادت را به یک محرک فراتبیعی تبدیل کرد، اما میتوانیم هر عادت را اغوا کننده تر کنیم. به منظور، باید کارمان را با شناسایی ماهیت وسوسهها ها و نحوه عملکردشان آغاز کنیم. بحث را با بررسی یک شاخص بیولوژیک شروع می کنیم که همه عادت در اختیار دارند. افزایش دوپامین. حلقه بازخورد مبتنی بر دوپامین. دانشمندان می توانند لحظه دقیق وقوع یک وسوسه را با اندازهگیری یکی از پیامرسانهای عصبی به نام دوپامین رهگیری کنند. اهمیت دوپامین در سال 1954 آشکار شد، جایی که عصب به نامهای جیمز اولز و پیتر میلنر آزمایشی را انجام دادند تا فعل و انفعالات ذهن هنگام وسوسه و تمایل را افشا کنند. با كاشتن الکترادهایی در مغز موشها محققان انتشار دوپامین را مسدود کردند در کمال تعجب دانشمندان موشها تمایلشان به زندگی را از دست دادند آنها غذا نمیخوردند سکس نمیکردند هوس چیزی به سرشان نمیزد چند روز بعد حیوانات از تشنگی مردند در مطالعات متعاقب دانشمندان دیگری نیز بخش های منتشر کننده دوپامین را مسدود کردند. اما این بار قطره‌های های اندکی از قند را داخل دهان موش‌های محروم از دوپامین میچکاندند چهره موش های کوچک به خاطر طعم این ماده خوشمزه جان میگرفت و لذت میبردند. اگرچه دوپامین مسدود شده بود، اما باز هم به اندازه قبل قند را دوست داشتند صرفا دیگر دلشان قند نمی‌خواست قابلیت تجربه از لذت‌ها کماکان پابرجا مانده بود اما بدون دوپامین تمایلشان از بین رفت بدون تمایل هم عمل متوقف می‌شود وقتی سایر محققان این پروسه را معکوس کردند و سیستم پاداش مغز را با دوپامین سیراب کردند حیوانات عادتشان را با سرعتی سرسام آور انجام دادند در یک مطالعه موشها هر بار که دماغشان را به جعبه میزدند، مقدار قابل توجهی دوپامین به آنها می میشد. طی چند دقیقه موشها آنقدر وسوسه و تحریک شده بودند که 800 بار در ساعت دماغشان را به جعبه کوبیدند انسانها هم آنقدر متفاوت نیستند. یک آدم معمولی اگر پشت دستگاه اصلات قرار بگیرد، 600 بار در ساعت اهرم را خواهد چرخاند. عادتها یک حلقه بازخورد مبتنی بر دوپامین هستند. هر رفتاری که به شدت ایتیاد آور است. مصرف مواد مخدر، خوردن غذای ناسالم، انجام بازی ویدیویی جستجو در رسانه های اجتماعی، با میزان بالاتری از دوپامین ارتباط دارد همین امر را میتوان درباره اساسی ترین رفتارهای همیشگی ما نظیر خوردن غذا نوشیدن آب رابطه جنسی و تعامل اجتماعی بیان کرد سالها بود که دانشمندان فرض میکردند دوپامین کاملا به لذت مربوط میشود اما اکنون می‌دانیم که نقش محوری را در بسیاری از های عصبی از جمله انگیزش، یادگیری و حافظه، تنبیه و نفرت و حرکات دوپ‌طلبانه ایفا می‌کند. وقتی صحبت از می می‌شود، برداشت اصلی ما این است: دوپامین نه فقط در زمانی که لذت را تجربه می‌کنید، بلکه در زمان پیش‌بینی آن نیز منتشر می‌شود. معتادان به قمار بیشترین میزان دوپامین را پیش از اینکه روی فلان چیز شرط ببندند تجربه می کنند نه زمانی که میبرند معتادان به کوکائین بیشترین موج دوپامین را در زمان دیدن پودر ترشح می کنند نه زمانی که آن را بالا میکشند هر زمان که پیش بینی کنید فلان پاداش در انتظارتان است میزان دوپامین شما با همان پیشبینی افزایش می‌یابد هر زمان هم دوپامین افزایش می‌یابد انگیزه شما برای اقدام بیشتر میشود، این پیشبینی پاداش است نه برآورده‌سازی آن که ما را به عمل کردن و گام برداشتن ترغیب میکند، جالب اینجاست سیستمی که در زمان دریافت پاداش در مغز فعال میشود، همان سیستمی است که در زمان پیشبینی پاداش فعال می شود. این یکی از دلایلی است که پیشبینی یک تجربه میتواند حس بهتری از دستیابی به آن داشته باشد. یک بچه با فکر کردن به صبح کریسمس لذت بیشتری می برد تا زمانی که هدیه ها را باز می کند. یک بزرگسال با رویاپردازی پردازی درباره مرخصی، یا فلان روز تعطیل لذت بیشتری میبرد تا زمانی که واقعا به آن تعطیلات می رود دانشمندان این پدیده را به عنوان تفاوت میان خواستن و دوست داشتن مطرح می کنند مغزتان برای خواستن پاداش ها، مدارهای عصبی بسیار بیشتری را نسبت به دوست داشتن آنها در نظر گرفته است مراکز خواستن در مغز بزرگند، ساغه مغز، هسته اکومبنس، ناحیه تگمنتوم شکمی، جسم مخطط، آمیگدال و بخش از قشر پیش پیشانی، در مقام مقایسه مراکز دوست داشتن در مغز بسیار کوچکترند. آنها را غالباً نقاط حساس لذتی مینامیم و همانند جزایر کوچکی در جای جای مغز توضیح شدهاند. مثلا محققان دریافتند که صد درصد از هسته اکومبنس در حین پروسه خواستن فعال می شود. در حالی که فقط ده درصد از این هسته در حین دوست داشتن فعال می شود. این حقیقت که مغز فضای ارزشمند فراوانی را به نواهی مسئول وسوسه و تمایل اختصاص می دهد سندی دیگر، برای اثبات مسئولیت حیاتی است که این پروسه ها ایفا میکنند تمایل همچون موتور محرک رفتار است هر اقدامی که صورت میگیرد به خاطر پیش بینی است که پیشتر از آن اقدام انجام می دهیم. این وسوسه است که به پاسخ و واکنش منتج می شود. این بینش ها اهمیت قانون دوم تغییر رفتار را نشان میدهند باید عادت را جذاب کنیم. زیرا انتظار برای یک تجربه ی نتیجه بخش و پاداش است که سنگ بنای اقدام ما محسوب می شود. اینجاست که یک استراتژی تحت عنوان جمعبندی خواسته ها وارد کار می شود. پیش از اینکه یک عادت آموخته شود، دوپامین در زمانی آزاد می شود که برای اولین بار، پاداش را تجربه میکنید دفعه بعد دوپامین بلا فاصله پس از شناسایی سرنخ پیش از اقدام افزایش مییابد این افزایش دوپامین نوعی حس تمایل و وسوسه ایجاد میکند که هر زمان آن سرنخ نخ رسد شد اقدام مربوطه انجام گیرد زمانی که عادت ملکه ذهنتان شود دوپامین دیگر با تجربه پاداش افزایش نخواهد یافت زیرا در این شرایط پاداش جنبه غیرمنتظره ندارد در هر حال اگر یک سرنخ را ببینید و انتظار پاداش را بکشید اما در نهایت پاداشی نصیبتان نشود دوپامینتان به خاطر سرخوردگی و ناامیدی کاهش خواهد یافت وقتی یک پاداش دیر از راه میرسد حس واکنش به دوپامین را میتوان به وضوح مشاهده کرد ابتدا سر نخ شناسایی میشود و با ایجاد وسوسه دوپامین افزایش مییابد در ادامه واکنش انجام میگیرد اما پاداش با آن سرعتی که انتظار دارید از راه نمیرسد و دوپامین شروع به افت میکند در نهایت وقتی پاداش اندکی دیرتر از انتظارتان از راه میرسد دوپامین مجددن افزایش میابد انگار مغزتان دارد به شما میگوید دیدی راست میگفتم یادت باشد که دفعه بعد هم همین کار را تکرار کنی. چگونه از جمبندی خواسته ها برای افزایش جذابیت عادتهایتان بهره بگیرید. رونان باین که دانشجوی مهندسی برق در دوبلین از کشور ایرلند بود، از دیدن نتفلیکس لذت می‌برد اما می‌دانست که باید بیش از مقدار کنونی ورزش کند. باین با به کارگیری مهارت‌های شرخه ثابت خود را به لپتاپ و تلویزیون متصل کرد. سپس یک برنامه کامپیوتری نوشت که فقط در صورت رسیدن به یک سرعت معین اجازه پخش را به نتفلیکس میداد. اگر به مدت طولانی از سرعت رکاب زدنش کاسته میشد، هر برنامه که در حال تماشایش بود متوقف میشد تا دوباره رکاب زدن را از سر بگیرد. او به گفته یکی از دوستانش در حال از بین بردن چاقی با سرعت یک برنامه نتفلیکس در هر بار ورزش بود. او همچنین از استراتژی جمبندی خواسته ها بهره گرفت تا عادت به ورزش را جذاب تر کند. جمبندی خواسته ها به گونه ای عمل می کند که اقدام دلخواهتان را به اقدامی که باید انجام دهید، پیوند میزند در قضیه باین او مشاهده نتفلیکس کاری که دوست داشت انجام بدهد را با راندن دوچرخه ثابت یعنی کاری که باید انجام میداد تلفیق کرد کسب و کارها استاد جم بندی خواسته ها هستند مثلا وقتی کمپانی امریکن برادکستینگ که آن را با نام اختصاری ABC میشناسند برنامه‌های پنجشنبه شب خود را در فصل 2014-2015 تعیین کرد از استراتژی جنبندی خواسته ها در مقیاس بزرگ بهره گرفت هر پنجشنبه کمپانی سه برنامه که توسط نویسندهاش شوندور رایمز نوشته شده بود را پخش می‌کرد آناتومی گری رسوایی و چگونه از مجازات قتل فرار کنیم آنها شعار تی جی آی تی در ای بی سی را تبلیغ کردند تی, جی آی تی مخفف عبارت خدا را شکر پنج شنبه رسید است علاوه بر تبلیغ برنامه ها ای بی سی بینندگان را تشویق می کرد که پاپکارن درست کنند شراب قرمز بنوشند و از این غروب لذت ببرند اندرو کوبیتز سرپرست برنامه ریزی ABC ایده پشت این کمپین را شهر داد. پنجشنبه شب را همچون یک فرصت جلب بیننده می بینیم. برای زوجها یا خانمهای تنهایی که دوست دارند بنشینند و لذت ببرند و شراب قرمز بنوشند و هم مقداری پاپکورن درست کنند. نکته خارقل عاده این استراتژی در تلفیق خواسته های ABC، از بینندگان یعنی اینکه برنامههایشان را ببینند با فعالیتهایی بود که بینندگان خودشان تمایل به انجامش داشتند یعنی ریلکس کردن، نوشیدن شراب و خوردن کورن. به تدریج مردم تماشای ABC را به حس آرامش و سرگرمی ارتباط دادند. اگر شما هر پنج شنبه ساعت هشت شراب قرمز بنوشید، و کورن بخورید ساعت هشت پنج شنبه شب برای شما مترادف با آرامش و سرگرمی خواهد بود. این پاداش به سر نخ ارتباط داده خواهد شد و عادت به روشن کردن تلویزیون جذابتر می شود. اگر وادارتان کنند که یک رفتار را همزمان با یکی از کارهای محبوبتان انجام دهید، آن عادت برای شما جذابتر خواهد شد. شاید دوست داشته باشید درباره آخرین شایعات سلبریتی‌ها بشنوید اما باید تناسب اندامتان نیز حفظ شود با استفاده از جمبندی خواسته ها می در باشگاه روزنامه بخوانید و برنامه‌های واقعنما ریلتی شو ببینید شاید دوست داشته باشید پدیکور انجام دهید اما باید صندوق دریافت ایمیلتان را هم چک کنید، راهکار. کافیست در حین انجام پدیکور، ایمیل های کاری که موعدشان به سر رسیده را بررسی کنید. جمبندی خواسته ها یکی از روش اعمال یک تئوری روانشناسی به نام اصل پریماک است. این اصل که به نام استاد دیوید پریماک نامگذاری شد میگوید رفتارهای محتمل باعث می شوند رفتارهایی که احتمالشان کمتر است، تقویت شوند. به عبارت دیگر، حتی اگر تمایلی به پردازش ایمیل های کاری قدیمیتان نداشته باشید، وقتی قرار شود، آن را در کنار یک کار دیگر انجام دهید، ذهنتان شرطی می شود که سراغ اجرای آن برود. حتی می توانید جمع خواسته ها را با استراتژی زنجیره سازی ها، که در فصل پنج مطرح کردیم ترکیب کنید تا مجموعه ای از قوانین را برای هدایت رفتارتان بسازید. فرمول زنجیر سازی عادت به ازافی جمع خواسته اینچونین می شود. یک، پس از عادت فعلی آن عادت مورد نیاز را انجام خواهم داد. دو، پس از عادت مورد نیازم، آن عادت دلخواه را انجام خواهم داد. اگر دوست دارید اخبار را بخوانید، اما باید قدردانی بیشتری را نسبت به دیگران اعلام کنید. یک، پس از خوردن قهوه صبحگاهی مراتب تشکر خودم را درباره اتفاقات دیروز بیان خواهم کرد. یعنی مورد نیاز. دو، پس از سپاسگزاری کلامی، اخبار را مطالعه خواهم کرد یعنی دلخواه اگر دوست دارید مسابقات ورزشی را ببینید اما باید برای بازاریابی تماس بگیرید یک پس از اینکه از صرف نهار برگشتم با سه نفر از مشتریان احتمالی تماس میگیرم یعنی مورد نیاز دو پس از تماس با سه مشتری بلقوه سایت ورزشی را چک میکنم یعنی دلخوا اگر دوست دارید فیسبوک را چک کنید اما باید بیشتر ورزش کنید؟ یک. پس از اینکه گوشیم را بیرون آوردم، ده حرکت برپی میزنم، یعنی مورد نیاز. دو. پس از ده برپی فیسبوک را چک خواهم کرد. احتمالش زیاد است که بالاخره با سه مشتری تماس بگیرید یا، ده عدد برپی را بزنید، زیرا فقط به همین شرط است که میتوانید آخرین اخبار ورزشی را بخوانید یا فیسبوک را چک کنید. اجرای کاری که باید انجام شود به معنای کسب اجازه برای کاری است که دوست دارید انجام دهید. این فصل را با بحث درباره محرک های آغاز کردیم که نسخه های اقراق شده از واقعیت هستند، و موجب افزایش تمایلمان برای اقدام میشوند. جمبندی خواسته یک رویکرد برای ایجاد نسخه های اقراق شده از هر عادت است زیرا آن را به یکی از خواسته های کنونی شما متصل میکند. مهندسی عادتی که واقعا غیر قابل مقاومت باشد یک وظیفه دشوار است اما این استراتژی ساده می تواند تقریبا برای همه عادات به کار گرفته شود تا بر میزان جذابیتشان بیافزاید. خلاصه فصل دومین قانون تغییر رفتار میگوید آن را جذاب کنید هرقدر فرصتی جذاب تر باشد احتمال اینکه به شکل گیری عادت منجر شود بیشتر خواهد بود عادتها حلقه‌های حلقه های بازخورد مبتنی بر دوپامین هستند وقتی دوپامین افزایش میابد انگیزه ما برای اقدام نیز بیشتر میشود پیشبینی یک پاداش نه براورد سازیان است که ما را به اقدام وامی دارد هرقدر پیشبینی بزرگتری داشته باشیم میزان دوپامین بیشتر خواهد شد. جمبندی خواسته ها یک رویکرد برای افزایش جذابیت عادت هایتان است. این استراتژی اقدامی که دوست دارید را با اقدامی که به آن نیاز دارید جفت می کند.